نردبان جاودان وصل مجموعه سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی فلسفه و اهمیت زیارت جلسه دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد الله و, <تصفيق> و, آل و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لا سیما الله تلاخف الارزین اللهم انت السلام و من کس سلام بللك السلام و يَعُودُ يعود السلام سبحان ربك الْعِزَّةِ عزت ع يصففون والسلام على المرسلين لِلَّهِ رَبِّ ربّ العلمين السلام عليك يحنبي ورحمة الله و السلام على الأئمة الحادين المحدين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 السلام على محمد ابن علي الجباد السلام على علي بن محمد الحادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام على الهجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله و على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابداً ما بقید و بقی والنهار و النهار و لاج آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علي ابن الحسين و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين دیشب با توجه به حدیثی که از امام اسکری علیه و السلام در رابطه با زیارت عربعین وارد شده به عرض رسندم اون امام بزرگوار فرمودن یکی از پنج نشانه شیعان ما زیارت عربعین است در رابطه با زیارت و زیارت عربعین ما دو بحث داریم یک بحث اصل زیارت لزوم زیارت اهمیت زیارت نقش سازندگی و تربیتی و تقویت اعتقادی زیارت یک بحث محتوای زیارت اربعین محتوای زیارت اربعین بحثی نیست که در یک و دو و ده جلسه بشه به پایان بیاد خودش جلسات زیادی رو میطلبه که انسان این کلمات رو این واژه ها را که امام علیه السلام امام صادق فرمودن اگر روز اربعین میخواید امام حسین رو زیارت کنید با بیان السلام علی ولی الله و حبیبه خود سلام بر ولی خدا یک بحث مفصلی است ولی خدا یعنی چی و چرا در کنار ولی خدا حبیب رو بیان کرده السلام علی ولی الله و حبیبه چرا بعدش میفرماد السلام و علا خلیل الله و نجیبه ارتباط خلیل بعد از حبیب چیه ارتباط خلیل با نجیب چیه و بعد از این چند کلمه السلام و علا وصی الله و ابن وصیه هم خودد وسیع الهی هستی هم فرزند وصی الهی تا میرسه به مزامین بلند بعدی که و بزل او لیستن غزل عباد من, من الجهال و حیرت الزلاله اون بحث محتوا رو اجازه بدید ما فعلا کاری نداشته باشیم اما در بحث اصل زیارت و ارزش و اهمیت زیارت و سازندگی زیارت و این که وحابیون اصرار دارن مسلمین را از این کلاس سازنده و ارزنده انسانسازی جدا کنن ما مسلمون ها مبذفیم دقت بیشتری بکنیم لذا دیشب ارز کردم اگر زیارت را بخوایم به معنی فارسی بیان کنیم ترجمه کنیم بگیم دیدار ما به دیدار فلانی رفتیم بگیم به زیارت فلانی رفتیم همون که در ما رایج است میگیم زیارت اهل قبور گاهی ما نسبت به زنده ها. به دیدار یک زنده می رویم، گاهی به دیدار مردگان زیارت اهل و قبور در رابطه با انسانهایی که در حیات ظاهری هستند و در این عالم ما با آنها ارتباط برقرار می‌کنیم، دید و بازدید داریم، دیدار داریم آیا هرچه این چند نکته رو در تکمیل و جنبندی بحث دیشه برز کنم هرچه انسان علاقمندتر مشتاقتر و با جدیت بیشتری خواهان تکامل و تعادی بیشتر باشد آیا نمی کوشد کسانی را که تاثیرگذار در این خواسته هستند و اگر اثرگذاریشون بیشتر است اونها را بهتر بشناسم و با آنها ارتباط بیشتری داشته باشم ما اگر طالب تعالی علمی باشیم نشست و برخاست با آلمان برجسته تر در رشد علمی ما تأثیر گذارتر است یا فاصله گرفتن از آلمان و از برجستگان اگر از نظر اخلاقی رفتاری تعالی ارفانی خواهان تعالی روح باشیم با کسانی که ساخته شده اند کمال یافده ان، تعالی ارفانی پیدا کرده ان، با آنها دیدار بیشتر داشته باشیم هم با آنها را برای خودمون فراهم کنیم امکان رشد بهتر برامون هست یا از افراد ارزنده این شنانی فاصله بگیریم این یک واقعیتی است که انسان برای شکل پذیری باید با کسانی که بهتر شکل پذیرفته‌اند و از نظر تحول شخصیت در ستوح بالاتری هستند با اونها ارتباط بیشتری برقرار کنیم در همین عالم همین گونه است پس اگر زیارت را به معنی دیدار بگیریم ما به دیدار ارزندهها برویم با ارزنده ها بیشتر نشست و برخاست کنیم از ارزنده ها بخواهیم برای ما وقت بگذارن تا بتوانیم در محضر آنها سود ببریم این یک واقعیتی است که کسی منکران نمی‌تونه بشه چون اصل این مطلب به قدری روشن و واضح است که مخالفین مکتب اهل بیت علیهم السلام دویجه وحابیون نمیتوانند این واقعیت رو منکر شبهن اومدن از یک راه دیگری وارد بشن تا ما رو از این کلاس سازندگی باز بدارن اون حرف چیست میگن پیغمبر یا حرف فرستاده و معمور الهی تا زمانی که زنده بود شما می توانستید به دیدارش بروید در محضرش بنشینید و از آنها استفاده کنید حال که از دنیا رفتن و اینها به کلی دستشون از دنیا کوتاست شما به زیارت قبور آنها می روید زیارت قبور آنها چه سازندگی می تواند داشته باشد؟ و این نوعی بزرگ کردن اموری است که ارزش آنقدر بزرگ کردن را ندارد جواب غیر از نکات بسیار مهم دیگر که اگر فرصت اجازه داد با آنها خواهم پرداخت شاء الله. غیر از اون نکات همین نکته اول را روی سخن ما با این افراد چنین است که شما، غیر از آیه شریفهای که می‌فرماید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله انواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون اینها از دنیا نرفتهاند بلکه زندهاند اون بحثا مطرح نمی کنیم. اصلا یه بحث دیگری رو به عنوان هم بحث قرآنی هم یک بحث عمیق فلسفی و عرفانی که صاحب نظران به این بحث خوب پرداختند. اشاره می‌کنم بحث دیشب رو تا امشب با دو سه تا روایت جانانه و یک تحلیل یک مقدار دقیق تر عقلی این بحث رو پی بگیریم. انایت بکنید. ما روی سخنمون با این افراد این است که شما مرگ را چه معنی می کنید؟ آیا مرگ را فوت می گیرید یا مرگ را وفات می گیرید قرآن کریم مرگ را فوت نگرفته مرگ را وفات گرفته است همچنانی که خواب هم نوعی وفات است آیه شریفه ای که در جلسه دیشب فقط اشاره کردم سوره مبارکه زمر آیه شریفه چهل دوم الله ها ی توفّل موتها و لم تمت فی منامها خداوند توفی می کند نفوس بشری را نفس های انسان ها را چه اون نفسهایی که مرگشون رسیده است مرحوم اللامهٔ تبا تبایی رضوان الله تعالی علیه در زیل این آیه شریفه یک اشاره و توجه بسیار زیبایی میبخشند تحت این عنوان اینکه در آیه شریفه میفرماید یتوفل الانفس حین موتها اینها به چی برمیگرده به نفس نفس که مرک نداره موت که برای نفس معنا نداره نفس مجرده. مجرد مجرد میتونه تعلقاتش رو از دست بده اگر نفس به بدن متعلقه این تعلق رو رها کنه پس هین موت‌ها یعنی چی یعنی این موت بدن موت بدن هم در اینجا به چه معنیه؟ یعنی وقتی که نفس میخواد از بدن کاملا تمام عیار گرفته شود، اونی که در لحظه مرگ از وجود من و امثال من و شما میگیرد که قرآن میفرماید یتوفا کاملا این رو تحویل میگیره بدن رو که تحویل نمیگیره بدن که یا تو این عالم خاکستر می شود یا تو غبر می رود یا می سوزد یا خوراکی حیوان دیگری می شود اونی که به صورت کامل و تمام گرفته می شود اون نفس است همون گونه که در خواب همین کار صورت می گیره. خوب دقت بفرمایید اول آیه رو دقت کنیم الله یتوفى النفس حی نموتها ولتی لم تمت في منامها یعنی که خوابیده نائمه نه است نفس او هم گرفته می شود فیمس کلتی قضا علیه الموت اونی که مقرر شده بناس بمیره این نفس را خدا وقتی تماما تحویل گرفت پیش خودش نگه میداره اما و یرسل الاخرا الى اجلن مسمما اون دیگری را دیگری یعنی اونی که خابیده بنا نیست بمیره اونو برمیگردونه. دوباره این نفس به این بدن ملحد میشود. شود اینجا از امیر روایتی است هم شیعه نقل کرده هم سنی چند نکته بسیار ظریفی داره که اون نکته ها رو من در ادامه بحث باید بگم ولی یه نکتش رو اینجا لازمه ارزم می‌کنم. از امیر راجب همین آیه سوال کردند در تفسیر مجمع البیان در زیل همین آیه شریفه امام علیه السلام فرمودن که این که نفس گرفته می شود در مرگ برمیگردد ارتباطی که بین نفس و بدن در حالت خواب که برمیگردد باقی است مثل شعاع خورشید با خورشید است گرچه شعاع خورشید خورشید نیست ولی یک تعلقی به خورشید داره در حالت خواب یک همچوآشه ای همچو شعایی همچو تجلی همچو جلوه‌ای بین نفس و بدن هست لذا بدن به کلی مثل جسد مرده نیست ولی اونی که نفس از بدنش کاملا جدا می شود و قرار نیست به بدن برگردد این ارتباط به کلی قطع می شود لذا بدن حالت یک بدن سالمی رو که داره از دست می ده کم کم ممکنه حالت متلاشی شدن و غیره رو پیدا کنه یه نکته ای که در ادامه آیه قرآن کریمی میفرماید انایت بفرمایید الله یتوفل انف سهین موتها ولتی لم تمت فی منامها و یمس کلتی غذا علیه الموت و یرسل الاخرا الى اجل مسمى این نفیزا لکل آیات لقوم یتفکرونه برای مردمی که اهل تفکرن برای برای هایی که اندیشه می‌کنند، خیلی نکته‌های زریفی در این موضوع هست. آیاتی است، نشانه‌هایی است. حالا چیه؟ یه مختصرش رو در رابطه با زیارتی که ما میگیم اموات، زیارت اموات یا زیارت اولیای الهی که ظاهراً در این دنیا نیستن. خب. گفتیم آنچه که حقیقت انسان را تشکیل میدهد چیست؟ نفس اوست، نه بدن این بدن که مرتب در حال تغییر و تبدله بدن شما ده سال قبل غیر از بدن الان شماست بدن ده سال دیگر شما غیر از بدن حالای شماست درک شما، فهم شما، علم شما، شناخت شما، شخصیت شما، باورهای شما همه مربوط به حالات نفسانی شماست لذا نفس ممکن است مطمئن نشود نفس ممکن است امارتون به سو باشد نفس ممکن است که لوامه شود آیا امکانش نیست یک نفسی که امارتون به سوز بدن شاداب و چابک و خیلی قوی و پرتوان باشه و به با عکس یک نفسی که مطمئنه است بدنش فرسوده و آسیب دیده و رنجور باشه آیا ارزش این انسان ها به اون بدن توانمند است یا به اون حالت نفسانی که این بدن ابزار اون نفس است به قول مرحوم شیخ بهائی که یک زیباروی بداخلاقی را دیدم گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد بدن و تشبیه کرده به خانه روحیات و شخصیت انسان را که حالت است به صاحب خانه اخلاقش بده ولی قیافش زیباست چه خانه زیبایی که صاحب خانه بدی دارد حالا در این دنیا نفسی که با بدن همراه است. نفس امارتون به سوس ولی بدن زیبا شاداب خیلی عالی من در معاشرت با این فرد بیشتر تأثیر شخصیتی میپذیرم یا با اون انسانی که نفسش مطمئن است، ولو بدنش آزرده و افسرده و رنجور و نحیف و ضعیف باشد از کدوم بیشتر من تأثیر شخصیتی میپذیرم؟ از آن فردی که حالات نفسانیش قویه چون اثر اثر نفسانیه حالا گاهی نفس برای اثرگذاری از ابزار مادی استفاده میکند مثل اینکه بنده الان مطالبی رو که در رابطه با این موضوع بناس با شما عزیزان گفت و شنود کنم این مطالب مربوط به بدن من است یا مربوط به نفس منه این تو دنیای جان منه، تو فکر منه، تو ذهن منه، تو نفس منه ولی زبان ابزار است. تارهای صوتی ابزار است حنجره ابزار انز... است این صوتی که الان کلمات رو بتوانم به وسیله این ابزار مادی به شما منتقل کنم اینا میشه ابزار حالا گاهی ابزار ضعیفه ممکنه بنده نتونم حرف بزنم ولی بتوانم بنویسم میگم دیگه حنجرم یاری نمی کند دیگه زبانم کمک نمیکنه حرف بزنم ولی فعلا میتونم بنویسم مینویسم ولی اگر انایت بکنید اینجا رو ولی اگر یک انسان قدرت نفسانیش اونقدر قوی شده باشد که برای انتقال اون چرا که در دنیای نفس خود دارد به دیگری یا گرفتنش از دیگری و ابزار مادی نیاز نداشته باشه با ارتباط نفس با نفس این دیدار رو رخ بده ایجاد کنه و نتیجه بگیره مثل شهود نومیه یه لحظه اجازه بدید من یک بار یادمه در همین حسینیه گفتم ولی یادآوری میکنم عزیزانی که نبوده به این نکته توجه کنن فن میگن شهود و مکاشفه چند مرحله داره یکیش نومیه یکیش موتیه یکیش قیامتیه شهود نومیه رؤیای صادق است شهود نومیه رؤیای صادق است شما یک حقایقی را که با شنیدن گوش یا با دیدن چشم سر یا با لمس کردن ظاهری حواس ظاهری یا با تعم... قل به صورت دریافت مفهومی نمیتوانید بهش برسید ولی میتوانید بر مبنای قدرت مکاشفه درونی مکاشفه کنید مثل اینکه الان بنده اینجا نشستم خوب دقت بفرمایید جز میکنم از من بپرسید این آب سرده یا گرمه حس من میتونه جواب بده یا نه خب دست میزنم یا میچشم این آب تلخ یا شیرینه حس من میتونه جواب بده حالا اگر به من بگن شما با احساستون همین لمس کردن یا چشیدن بگید این ساختمون مهندس خوبی داشته یا نه میگیم نمیشه باید عقل دخالت کنه چون عقل از آثار پی به میبره خب اینجا بگم امری را که عقل میتواند با حس امری را که حس میتواند بدون عقل حالا امری که مربوط به است و عقل نمیتواند مثلا آقا شما این آب رو دور گذاشتن نه دستم بهش میرسه نه بخارشو میبینم نه چشیدم میگه فکر کن با تعقل بگو سرد یا گرم شیرین یا تلخه میگم این کار عقل نیست این امور جزئیه مال حسه عقل مفاهیم کلی رو بیان میکنه حالا اگر امری را نه به این صورت حس میتونه جواب بده نه عقل میتونه مثل اینکه شما میتونید بگید پنج سال دیگه در شب عربعین تو تهران کیا هستیم و چه واقعی رخ میدهد؟ آیا می شود برای پنج سال دیگه شب عربعین پای منبر امام عصر روحی و ارواح العالمین التراب مقدمه الفدا بعد از ظهورش باشد ما نشسته باشیم؟ کی می تونه جواب بده؟ مگر اونهایی که اهله مکاشفه هستند رؤیای صادقه در عالم خواب این کارو می کنه یا نمی کنه؟ قضیهی که مال پنج سال دیگره مال ده سال دیگره نه حس میتونه واقعی پنج سال دیگر رو نظر بده نه عقل یه امریست که هیچی قابل پیشبینی ابزار ظاهری نیست ولی در عالم خواب خواب چیه؟ آیه فرمود جدایی نفس از بدن وقتی نفس از بدن جدا می شود دو جور دیدن دارد یک دیدن رو لذا میگیم رویا رویا از کلمه رویت دیگه دیدن یک نوع دیدن یعنی مکاشفه, مکاشفه صادق است میگن رویای صادقه یک نوع موهومات است حدیثی رو مولا فرمودن عجیبه مجمع البیان جلده هشت صفحه پونسد و یک همین مضمون با یه اختلاف بسیار مختصری در این مجمع البیان مال ما شیعه هاست جلد 8 صفحه پونسد و یک در رول مال سنیاس مال سیوتیه جلد پنج صفحه دو سی و نو. حدیث از امام باقر علیه السلامه امام باقر فرمودن در مجمع البیان از قول امام باقر که از امیر نقل میکنه در در رول مستقیما از امیر نقل میکنه که اینکه نفس هم رؤیای صادقه دارد هم رؤیای غیر صادقه و موهومات علت شیه چه زرنگایی بودند و چه سوال‌های قشنگی میکردند. این یه نکته قشنگی است خب قرآن میگه همان گونه که در مرگ نفس از بدن جدا میشود، ولی چون بناس این فرد از این دنیا برود این نفس به این بدن بر نمیگردد در عالم برزخ است تا قیامت به این بدن برگردد ولی در خواب نفس از بدن جدا می شود آیاشو خوندم براتون چلو دوی سوره زمر یه ارتباط مایی با بدن دارد ولی بر می گردد. حالا نفسی که از بدن جدا شده هم رؤیای صادقه دارد هم موهومات و تخیلات خب کی بهتر از امیر اینو برای ما تفسیر کنه از نظر فلسفی هم حالا عرض خواهم کرد این بحث رو مولا چی فرمودن؟ فرمودن نفس در خواب به سوی خدا می رود. چون آیه فرمود الله تبافل کلمه توفی اینو میرسونم. نفس در خواب به سوی خدا می رود. و با بدن مثل ارتباط شعاع خورشید با خورشید یک ارتباط باقی دارد. نفس هر آن در ملکوت آسمانها مشاهده کرده باشد. رویاه صادقه است و هر چه بین آسمان و زمین دیده باشد از است که شیطان در خیال او انداخته است عجیبه این روایت حالا از آیات دیگه باز اینو معنی میکنم اول اینو در شهود نومیه در نظر بگیرید یکی از شهودها شهود نومیه است ما تو عالم خواب یه مشاهداتی داریم ولی مشاهدات میتونه رویای صادقه نباشه تحلیل مولا چیه؟ میگه وقتی نفس در خواب از بدن گرفته می شود باد بره سوی عالم اعلی دیگه ملکوت اگر درجه ای دارد مقامی دارد که لیاقت سر از ملکوت در آوردن داره چون اعیان ثابته الان نپرسید چیه قبلا اشاره کردم بعد هم بحثشو میکنیم چون اعیان ثابته یعنی باطن همه حقائق در ملکوت هست باطن همه حقائق در ملکوت هست نفس بعد از این که از بدن جدا شد لیاقت سردرآوردن آوردن در ملکوت دارد و لذا در ملکوت به اندازه ای که میتواند دیدار، زیارت، ارتباط با ملکوت داشته باشد میشه شهود نومیه، میشه رویای صادقه اما اگر نفس در حدی نیست در عالم خواب وقتی از بدن جدا شد او رو به ملکوت راه بدن بین آسمان و زمین کنایه است یعنی تو درجات پایین تر نگه می دارن الان عینا از قرآن براتون شاهد میارم وقتی تو درجات پایین در نگه می دارن پایینتر حقایق عالم ملکوت نیست. او یک موهومات و یک سایه ها را میبیند به اختزای آن سایه ها شهود دارد اگر شما بین واقعیت و مجاز به این تمثیل مسنوی نگاه کنید مرغ بر بالا پران و سایه اش میدود بر خواب پران مرغ وش ابلهی سیاد اون سایه شود میدود چندان که بیمایه شود بیخبر کان عکس اون مرغ هواست، بیخبر که اصل اون سایه کجاست تیر میاندازد بهر سایه او ترکشش خالی شود در جستجو ترکش عمرش توهی شد عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت اونی که سایه را شکار میداند با جدیت دنبال سایه میدود میفهمه در اشتباه میکنه؟ نه مگر یه وقتی به خود بیاد شهود رؤیای غیر اینجوریه تو عالم مادون ملکوت به اینا دل خوش کرده ولی وقتی نفس در خواب از بدن جدا شد لیاقت سیر در ملکوت پیدا کرد رؤیای صادقه دارد که شهود نومی است حالا اجازه بدید از قرآن شاهد بیارم قرآن کریم ملاک برتری انسان رو چی میدونه؟ تقوا ان ن عند الله اتقىكم خب پس انسان به اقتضای درجه ای از تقوا که پیدا میکنه بالا میره حالا وقتی میخواد مقام انسان را در عالم بعد از مرگ که این نفس از بدن جدا شده مجددا در قیامت با بدن همراه شده در معاد هر کس به جایگاه اصلی خودش برسد همین تقوا را که متقین پیدا میکنند در سیر الله درجات مختلفش رو چگونه بیان میکنه؟ یک جا می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر پس این سیری که نفس میتونه پیدا کنه در حد در بهشت تو باغهای بهشت کنار نهرهای بهشت بودنه ولی از این بالاتر هم هست یا نه فی مقعد صدقن اند ملیکن مختدر فی مقعد صدقن اند ملیکن مقتدر. با فی جنات و نهر یکیه درجه هر هرچه بیشتر بود این نتیجه بیشتره همون گونه که در قیامت تقوا مال چیه؟ مال حالت نفسانی ماست دیگه شخصیت نفسانی ما یه وقت است که اصلا بهشتم نمیره جهنم میره این که پناه بر خدا یه وقت شخصیت نفسانی جهنمی نیست بهشتیه ولی چه درجه از بهشت؟ تو کاخای بهشت تو باغای بهشت کنار نهرهای شیر و اصل اما یه وقت درجه نفسانی در بهشت جنت لغاست فی مقعد صد اند ملیکن مختدره همون گونه که در خواب بفرموده مولا اگر نفس از بدن جدا شد توانه سر از ملکود در بیاورد شهود ملکوتی پیدا می میکند کسی که شهود ملکوتی پیدا کرده رویای صادقه داره لذا در روایات داریم شیعه و سنی نقل کردن برخی از متدینین صبحها وقتی خدمت پیغمبر میرسیدند حضرت میفرمودند هل من مباش من مبشرات حل اندکه یا لکم من مبشرات آیا شما بشارتهایی دارید منظور رویای صادقه چه دارید آیا در عالم خواب سیر کردید نفستون با عالم معنا رفت یا نه به همین دلیل میگن بیوزو نخوابید. میگن وقتی نفس از بدن جدا میشود این نفس تهارت ظاهری هم دارد یا ندارد تا برسه به تهارت باطنی به همین جهته که ابن سینا میگوید رؤیای هر فردی به اندازه شخصیت نفسانی اون فرد ارزش داره اینو داشته باشید حالا بحث ف... این بحث قرآنی بود بحث روایی بود بحث فلسفیشم خیلی جای خودش متقن محکم قوی حکما بحث کردند فقط با اشاره رد میشم اگر نفس مجرد نباشد اگر نفس در عالم خواب سیر ماوراع مادی نداشته باشد رؤیای صادقه اثر است اثر باید با مؤثر سنخیت داشته باشه سنخیت این اثر با بدن مادی چیه؟ همانطوری که در اثبات تجرد نفس در بحث علم مطرح می‌کنند، مگه ماده متغیر نیست مگه ماده متحول نیست علم نه به معنای کمیتش کم و زیاد می شود واقعیت علم مگه ثابت نیست خب اگر علم مال ماده باشد سنخیت بین این ظرف و مظروف یا این علت و این مؤثر و اثر و معلول چیه از همینجا ما نفس ثابت میکنیم. این اشاره است دارم رد میشم. همینطور با رؤیای صادقی مجرد بودن نفس و سیر تجردی نفس رو اثبات میکنیم. حالا اگر سیر تجردی نفس رو اثبات کردی در رؤیای صادقی جسم چه دخالتی کرد؟ هیچ. حالا اگر کسی قدرتی داشته باشد. انقدر نفسش غوی باشد که این شهود نومیه رو در بیداری هم پیدا کنه نیستن بعضی ها. کسانی که میگن چشمه برزخیشون بازه یا شهود موتیه رو بگم حالا شهود موتیه چیه؟ آقا کافرترین کافر منافقترین منافق لحظه مرگ متوجه حقیقت میشود یا نه؟ طبق آیه قرآن و طبق بحثایی که در جای خودش برای مقام نفس داریم اینه میگن شهود موتیه یعنی تا قبل از مرگ به پرموده پیغمبر انناس و نیامون ازا ماتو انتبهو حالا که مرد بیدار شد عجب حرفای انبیا راست بودا حرفای اولیا راست بودا این همه گفتن از خدا به ترسید راست سوا به هشت و دوزه حالا داره جلو چشمش همه رو میبینه به این دلیله که در قرآن آیه میگه وقتی که حتی اذا جا احدهم الموت قال رب جعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکتو اگر واقعیت ها رو نمیدید که این حرفو نمیزد آیه نمیگه متدینین میگه هر فردی پس معلوم این شهود موتیه است خب مولا فرمودن موتو قبل انت تموتو بمیرید قبل از اون که بمیرید یعنی همانطوری که با مرگ تعلق نفس از ماده خارج می شود و این آزادی از این تعلق مادی مکشف حقیقت می کند بعضی ها قبل از مرگ این حالت رو پیدا میکنن موت به این معنی یعنی تعلقاتشون رو از عالم ماده از دست میدن. حالا اگر نفس با مرگ یعنی جدایی از بدن به اقتضای درجه که دارد بالا می میرود همونطوری که در خواب نفس به اقتضای درجه که دارد بالا می میرود شما ارتباط با اون نفس برقرار کنید این میشه زیارت اموات منتها این زیارت معرفت میخواد این زیارت توجه میخواد به همین دلیل است که زیارت همه مثل نماز همه مثل روزه همه در یک سطحه مگه مولانا فرمودن بعضی از روزداری فقط قرسنگی و تشنگیشون کم من سا من لیسله و من سیامهی الا الجوع و زمان کم من قائمن نیست له من قیام هی الا السحر والانى حبذا نوم الاكیاس و افطارهم روزه همه در یک سطر نیست شب زندهداری همه در یک سطر نیست دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه هزار رکعت نماز یک فرد بی معرفت ارزشش بالاتری که روایت میگه زیارت همین جوریه یه وقت بنده یه کلاس عالم ربانی مرد الهی زنده دل بی که در کره زمین آشغان و علاقمندان و عرضش معنوی سالها دریدن یه همچو فردی رو پیدا کنند حالا قسمت من شد تو محضر این مرد خدا بنشینم زمانی که تو محضر این مرد خدا هم. هی نگاه میکنم خود شلوارش چه رنگیه نگاه میکنم که مثلا فرض کنید که محاسنش چقدر بلنده یا کوتاهه نگاه میکنم ای که توش نشسته پردههاش چه رنگیه یک کلام به فکر اینکه چه میگوید نیستم یا چه از او سوال کنم نیستم تازه اگه بخوام سوالم بکنم یه سآل مسخری میکنم که بقیه میخندم خب من و مرد خدا رو دیدار کردم به معنی عربی زیارت کردم رفتم پیشش ولی زیارت من در چه سطحی بود؟ اما اون انسانی که توجه به این معنا پیدا می میکند میخواد زیارت کند امام معصوم را میگه امام کیه نفسش به عنوان نفس انسان کامل نفس انسان کامل بالاترین درجه ای است که به عنوان نفس مطمئنه مطرحه حالا نفسش نفس مطمئنه شده نفس مطمئنه طبق آیه 42 دوی سوره زمر با مرگ کجا میرود ارجعی الی ربک راضیت مرزیه تو خواب نفس یک انسانی که میتواند تو ملکوت سر بیاورد ارتباط با ملکوت برقرار میکند. کند اون وقت در زیارت اگر ارتباط با نفس معصومی که اون نفس معصوم در اون مقام قرار گرفته بتواند این ارتباط رو برقرار کنه چه از اون نفس بخواد بگیرد جایی تعجب داره بخواد انایت کنه حالا اجازه بدید من با عنوانه تعیید بحث از روایت شاهد بیارم کامل و زیارات مال مرحوم ابن غولوی باب پنجاب و هشت عزیزان اهل مطالعه میدونند یکی از بهترین کتب ما شیعه هاست که بزرگان در علم رجال و علم درایت الحدیث وقتی به این کتاب کامل و زیارات ابن قولوی میرسن میگن چون ابن قولوی نقل کرده برای ما کافیه قبرش کنار قبر شیخ مفید پایین پای کازمین علیه ما سلامه سی هم فوتشه از علمای خیلی قدیمی ما شیعه هاست در این کتاب کامل زیارات ابن قولوی حالا من انشالله شب جمعه آینده از منابع اهل سنت هم خواهم خون باب پنجاب ان ابی عبدالله عليه السلام راوی میگه سأل تو ابا عبدالله ان زیارت قبر الحسین خدمت امام صادق رسیدم راجب زیارت قبر امام حسین سوال کردم دقت کنید قال انه افضل ما یکون من الاعمال یعنی چی؟ و افضل از اعمالی که میتواند باشد مگه نماز ستون دین نیست مگه جهاد یکی از اعمال ارزنده ای که حالا بعضیا جان دادن براشون سخته بعضیا مال دادن براشون سخته جهاد مالی همین جهاد خمس و زکات در راه خدا دادن جهاد بدنی به اون معنی که انسان تو میدان جنگ حاضر بشه جانشو در راه خدا بده اینا اعماله و و و چرا امام صادق فرمودند ها سؤال از زیارت امام حسین کردی افضلنه افضل ما يكون من الاعمال چرا حالا یه روایت دیگه بخونم تا بعد توضیح بدم باز همین کتاب باب 59 زید شهام میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام مال من زار قبر الحسین علیه السلام برای کسی که قبر امام حسین را زیارت میکند چیه چه ارزشیه چه مقامیه؟ قاله کان کمن زار الله فی عرشه دهه اول محرم امسال نمیدونم شب هفتم بود هشتم بود همین ایام تو دهی اول محرم نه الان دقیق میتونم بگم شب جمعه بود شب ای که تو دهه اول محرم بود من از شبکه اول تلویزیون یه وقت دیدم صدای علامه امینی پخش میشه چون تونه صدای مرحوم علامه امینی رو میشناخدم ناخودآگاه دویدم اومدم تو حال منزلمون ببینم این تلویزیون علامه است دیدم نوار مرحوم علامه امینی رو بذاشتن علامه امینی داشت این روایت رو بحث میکرد با همون حال علامه امینی میگفت روایت هست از رسول خدا فرمود اگر میخواهید همه انبیا را شب جمعه ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا اگر میخواهید همه اولیا را ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا اگر چی اگه میخواهید خدا را ملاقات کنید شب جمعه برید کربلا اینو شب جمعه اول دهه محرم تلویزیون صدای خود مرحوم علامه امینی رو در نقل این روایت پخش کرد. حالا این روایتی که بنده از کامل زیارات ابن قولبی براتون میخونم. باب پنجاب و زید شخام میگه. غلط لعبی عبدالله علیه السلام. به امام صادق عرض کردم. مال من زار قبر الحسین علیه السلام. چه مقامی است. چه ارزشی است. برای اون کسی که قبر حسین را زیارت میکند. قال کان زار الله فی عرشه مثل کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده با این مقدمه ای که عرض کردم حالا توضیح حدیث معلوم میشه اجازه بدید قال قلت مال من من منکم حالا اگر یکی از شماها غیر از امام حسین بقیه معصومین رو بخواد زیارت کنه سوال کننده هم دقیق بودن ها دقیق بودنا تو اصحاب ائمه از این تیپا بودن خب بعضی هم طرف رسیده به یه عالم جلیل القدر ارزنده ای میگه حضرت آقا یک سؤال دارم بفرمایید اسم مادر عزت قاسم چی بود چند سال عمر کرد؟ خب حالا ندونیم چی میشه نمیگم علم بده هر علمی خوبه ولی چیزی بپرسیم که تو زندگی ما ببینید داره سوال میکنه حالا زیارت امام حسین مثل زیارت خدا در عرشه است زیارت یکی دیگه از شماها چطور؟ قال کم انزار رسول الله مثل این است که رسول خدا را زیارت کرده باشیم تفاوت این دو تا حدیث رازش چیه؟ یه حدیث دیگه بخونم بعد با هم دیگه به تحلیل حدیث بپردازیم باب 66 کامل و زیارات حدیث هفتم. شخصی میگه از اصحاب با آقا امام صادق بودیم در یه جایی دیدیم یه عده سوار بر مرکبهایی هستن دارن میان رد میشن امام صادق علیه السلام پرسیدن اینا کیان کجا میرن ارس کردن بیشون که آقا یه عده دارن میرن برای زیارت فلان جا حضرت فرمودن چرا به زیارت شهید غریب نمیرن منظور امام حسین ریه السلام چون این از بودن فرمود چرا به زیارت شهید غریب نمیرن یکی از اینا اومد خدمت امام به امام ارز کرد اینی و حجه. من نوزده بار تا حج کردم میشه دعا کنید یه بار دیگه هم حج برم فد الله ای یرزغنی تمام الاشرین دعا کنید از خدا بخواید به من روزی کنه من بیستام رو تکمیل کنم که بی حج بیستومین هم انجام داده باشم غاله امام صادق فرمودن فحل زرطه قبرالحسین قبرالحسین رو زیارت کرده غالالله غالالزیارتهی خیرون من اشرین حجی زیارت حسین از اون بیستا حجی که تو مخوای بالاتره حالا البته من از سنی ها براتون می کنم بینشالله شب جمعه که آیشه دیگه پیغمبر امام حسین و مدرک رو میارم میخونم پیغمبر هی امام حسین و بغل خوردسال بغل میکنه میبوسه میبویه چه میکنه بعد آیشه گفت خیلی این بچه رو دوست داری فرمود اوس که در راه خدا شهید میشود و در کربلا دفن میشود و هر کس با معرفت به زیارت او او برود هر گامی که برمیدارد عجر یک حج و یک عمره مقبوله دارد پایش میگه یک حج فرمود ده تا. دهتا تا فرمود 100 تا صد تا تا هزار تا عایشه گفت من دیگه جرعت نکردم بپرسم چون ترسیدم پیغمبرم میخواد بیشترم بگه اونام جای خودش محفوظه ولی من این روایات اینجوری انتخاب کردم میخوام مراتب رو بگم حالا برگردیم به این حرف زیارت خدا یعنی چی کسی که حسین را با در بعضی از این روایات داره با معرفت من اینجا دیگه حالا اون قسمتشو نخوندم کسی امام حسین رو با معرفت زیارت کند مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده زیارت خدا یعنی چی؟ مگه خدا جسم ما به دیدار جسم بریم توضیحی که دیشب و امشب دادم. آیا زیارت خدا معنی ارتباط نفسانی با عالم عظمت حضرت حق و مشمول الهامات الهی شدن هست یا نیست؟ دقت کنید ما وحی مخصوص پیغمبره وحی خاص اما وحی به معنی الهام برای بندگان برجسته خدا هست یا نه مگر انسان هرچه قلبش پاکتر باشد امکان الهام حضرت حق بر اون قلب هست یا نیست در خطبه دویست و بیست و نهج البلاغه مولا نفرمود کسانی که اهل ذکرن ان الله سبحانه و تعالی جعل ذکر جلائن للقلوب تا اونجا که فی ازمان فترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم بندگانی حتی در ازمان الفترات بندگانی هستند که خدا در گوش اونها با اونها نجوا میکنه یعنی خدا با اونها حرف میزنه خدا به عقل اونها مطلب رو الحام میکنه با عقل اونها سخن میگه ارتباط با خدا یعنی لیاقت الحام گرفتن از حضرت حق لذا خدا الحام میکند میگه میخوای اون چرا که خدا به نفس رشد یافته پاکی که لیاقت همجباری غرب الله را دارد به او الحام میکند میخوای اونو ببینی برو پیش امام حسین یعنی چی؟ یعنی نفس امام حسین جوری با خدا شده است لذا سار الله است نفس امام حسین جوری فدایی خدا شده الله یتوفل حین موتها این نفس را برده در عرش است و اگر کسی بتواند با امام حسین رابطه برقرار کند مشکل در این رابطه است مشکل در این ارتباطه مشکل در این لیاقته مشکل از قابلیت و ظرفیته مشکل از گیرندگی گیرنده است سنده مثل ذات اقدس الهی از عالم عرش ربوبی افاظه فیوزات ربانی دارد تا که بتواند بگیرد این میشه زیارت ما لذا کسی که زیارت کند یا فرمود یکی از ماها را زیارت کنه مثل اینکه رسول خدا رو زیارت کرده میدونم شب اربعینه دلها میتپه برای یاد حسین و کربلای حسین و زیارت اربعین و حسین و مسائب و حسینی ولی پایه های معرفتی زیارت رو یک کمی دقت بیشتر بکنیم لذا ممکنه یک نفر از راه دور گفت نمیتونی به طرف خدمت امام صادق رسید کربلا رفتی گف نه به زیارت حسین رفته ای نه فرمود هر روز میتونی بری گفت چطور گفت قصد کن لباس تمیز بپوش برو رو بلندی باسا مثلا پشت بام رو به کربلا بگو السلام علیک یا ابا عبدالله همین, همین. ببینید چقدر کار ساده کردن یه وقت بنده از اینجا پا میشم ممکنه نمیخوام من وارد حوزه فقه و نظر فقها و مستحبات و مکروهات و واجب و حرام اینو نمیشه به مراجعتون مراجعه کنید فتواشون رو عمل کنید اما کلی عرض میکنم آقا یه وقت ممکنه بنده واقعا تو اطرافیانم نیاز داشته باشم که این خرجی که میخوام از اینجا بکنم برم الان تا فلان کشور یا فلان شهر شاید اون فقیر فامیل من واقعا نیازش ضروری تر باشه من بیام این رو به اون فقیر بدم بعد با یه دل شکسته یه کنم یه لباس تمیز بپوشم برم پشت بپ به جای اینکه از اینجا راه بیفتم همه مشکلاتو تمام قراره باید بکنم برای حفظ شعائرا اون جایی خودش محفوظ ارزم میکنم اما یه وقت تکلیف اینجوری میشه من از اینجا پا شدم راه افتادم رفتم سختی راه رو تحمل کردم حالا روبروی مثلا 1020 نفرم حل دادم اینا رو پروندم اینور اونور خودم رفتم بهترین جا رو تو حرم ابی عبدالله بگیرم حالا زیارت جامعه رو شروع میکنم یه ادم دلشون لک زده یه دقیقه بیانم بالا سر واسن همه به اینجوری میرونم من دارم زیارت جامع... میخونم. اما امام صادق می فرماد پشت با می خوند واسه با معرفت یک کلام بگو سلام علیک یا ابا عبدالله تو رو به عنوان زائری که امام حسین زیارت کردی سه. این تو کامل زیارات ابن قولوه یعنی راه راه آسان کردن بهانه نداشته باشه گاهی هم لازمه باید بریم کربلا باید بریم کنار قبر واسیم میکشن بکشن همونطوری که زمان متوکل عباسی گفت دست رو افراد رو قطع کنید که میخوان به زیارت مام حسین برن یه صبح زودی متوکل دید هم همه پشت کاخشه چه خبره صف کشیدن بیاد می‌خواد دست ببرید ببرید ما می‌خوایم بریم کربلا یه نفر اومد جلو دیدن این دستش بریده است گو این دست رو قبلا دادم حالا این دستو می‌خواید ببرید ببر اینا نگه داشتن وهابیت از این میترسه استعمار از این میترسه که عشق به اولیای الهی که کلاس تربیت از زیارت این وقتی در مسلمان‌ها قدرت به یک ارتباه این سراصیمه پا برهنه اشاره کردن تو تلویزیون میشب ها میبینید امشب اخبار غروبی من گوش کردم گفت نزدیک 11 میلیون وارد کربلا شدن یه بنده خدای ایرانی پیرمردی بود گفت دیشب من 50 کیلومتری خودم از تلویزیون شنیدم 50 کیلومتری کربلا 4 نیم بعد از ظهر رسیدم 4 صبح رسیدم کربلا 50 کیلومترا رو 4 تا 11 ساعت و نیم میان با ناله با گریه با اشق یک نگاه میکنه حبیب یا حسین، حبیب یا حسین، ما هستیم، رد میشه که نوبت و بقیه برسه، اینو دشمن میترسه زیارت دل را زنده میکند زیارت رابطه نفسانی است زیارت سخن گفتن نفس با نفس است گرچه گاهی این لفظم ممکنه دخالت بکنه حالا اگر کسی لال باشه نتونه حرف بزنه ولی معرفت پیدا کرده باشه بیاد از دور یه نگاهی به گنبد امام حسین بکنه یا از دور پشت بامی واسه بدون این که زبان بگرده از اعماق جانش بگه سلام علیک یا ابا عبدالله این ارتباط برقرار نمیشه راوی به این نفس نمیکنن مگر خدا وحی یا الحام به قلب شما نمیکند و کذا اوحینا الی ام موسا این وحی به مادر موسا الهام الهی است این الهام الهی به قلب زائر حسین لذا چقدر بزرگان بودند که آقا مشکل علمی داشتن با زیارت حل کردند سید بهرالعلوم میاد کنار زریع امیرالمومنین آقا مشکل دارم جواب میگیره چقدر بزرگان حرم امام رفتن مشکلات علمیشون حل کردن موردی رو بنده میشناسم چندین بار خدمت امام رفت زیارت حضرت تو خوابش اومد فرمود این مشکلتون و خواهرم حضرت معصومه تو قوم حل میکرد چرا اینجا اومدی برو از حضرت معصومه بگیر گاهی توجه میخوان بدن فکر نکنید اونا مقامشون پایینه گو برگشتم اومدم قوم رفتم خدمت حضرت معصومه مشکل هم حل شد آقازاده مرحوم علامه امینی آقا حادی امینی پسر بزرگ مرحوم علامه امینی که به رحمت خدا رفته یک کتاب در شراحال مرحوم حضرت معصومه سلام الله علیه ها نوشته چاب شده کتاب هم عربیش موجوده هم فارسیش مطلب رو من هم از کتابش ارز میکنم نسخه عربیش موجوده فارسیش کسی که ترجمه کرده یه بیلطفی کرده حالا میگم بیلطفیش چیه من از خود مرحوم آقاهادی هم این رو شنیدم ایشون فرمودن ما وقتی که از نجف به ایران آمدیم جریان صدام و اخراج معابدین گفت وارد تهران شدم رفتم قم گفتم غم ساکن میشم یه مدتی مشکلات مالی و بعضی گرفتاری ها به ما حجوم آورد خیلی در مزیغه قرار گرفتم رفتم حرم حضرت معصومه گفتم بی, بی جون من غهر کردم از غم میرم تهران دیگم به زیارت شما نمیام یه کاری بر من بکنید هیچ کم نمیدونست اومدم تهران تصمیم گرفتم یه جایی رو پیدا کنم تهران زندگی کنم یه روز صبح یکی از مردان خدا حالا اجازه بدید اسم نبرم یکی از مردان خدا که اومده بود تهران مهمان یکی از علمای تهران بود من صبح از در ای که اونجا مهمان بودم در اومدم دیدم در 15 تا روحانی امام به سر که بعضیاشونو رو می‌شناختم توی پیاده‌رو دارن میرن منو دیدن خب پسر علامه امینی و آقاهادی و از اون بود سلام علیه. کجا میرید؟ ما میریم دیدن فلانی اومده خونه فلانی گفتم منم با شما میام ایشونه ببینم همراه این آقایون وارد بر اون مرد خدا شدیم گفت در جلسه صحبت بگو مگو موعظه تموم شد آقایون بلند شدن برن اون مرد خدا به من گفت که آی آقا هادی امینی شما تشوخته باشید با شما ارزی دارم گفت من مندم همه که خارج شدن سر آورد در گوش من گفت پسر علامه امینی با حضرت قهر می‌کنه حضرت فرمودن که بیا من مشکل تو همین هفتم هم حل میکنم. برای این که جبران کنی این تندی که با حضرت کردی یک کتاب در شراحال ازت معصوم بنویس کف همون هفته مشکل من حل شد رفتم قوم ازخاهی کردم و بعدم این کتاب نوشتم دو کتاب آورده خودش اون وقت ما اسم اون رجل الهی رو تو ترجمه نیاورده چون نسبت به اون رجل الهی ظاهرا اعتقاد نداشته حالا کاری ندارم آقام اینا ارتباط نفسانی زیارت، ما باید نفسو بشناسیم قدرت نفسو بشناسیم مرگ را بدانیم مثل خواب که جدایی نفس از بدن است نفس جدا شده از بدن او آشکار تر شهود کنه منتها شهودش رویای صادقه باشد بر مبنای سیری که دارد نباشد لذا حضرت میفرماید 20 بیست تا حج حج برای چی میریم؟ حج میریم که خدایی بار بیایم. آقا عبادت برای چیه؟ قربتن؟ الالله قرب مکانی که نیست قرب زمانی که نیست قرب سفاتیه چه قرب سفاتی از این قرب بالاتر که لیاقت الهام الهی پیدا کنیم خدا الهام کنه به این قلب ارزش های الهی رو کانالی که خدا الهام می کند یکیش از طریق است که نفسشون پیش خدا رفته یا ایتوها النفس المطمئنه نه ارجعی الارب که رازیتن مرزیه لذا یکی از اونایی که اینو مرتب شنیده بود و عرض زیارت رو توجه داشت جناب این پیر قلام در خانه اهل بیت جابر بن عبدالله انصاری جابر پیر مردیست همسن سالای امیر تو زمان پیغمبر از اصحاب پیغمبره در جنگ سفین با امیر المؤمنین رشادت نشون داده حالا خیلی پیر شده چشماش هم نابیناست ظاهرم دیگه قدرت بینایی نداره به این جهت نمیتونه تو کربلا بیاد بعد که قضیه رو متوجه شد گفت حالا که من توفیق شهادت در کربلا رو نداشتم میخوام توفیق زیارت امام حسین رو پیدا کنم خودشو به هر زحمتی به کوفه رسند از مدینه تا کوفه پیرمرد نابینا اومد سراغ عتییه یک کوفی اونم از اصحاب بزرگ از یاران از شیعان مرد ارزنده حالا چرا در کربلا نبوده اینا یه مشکلاتی بازیا داشتن میگه وارد بر عتییه شدم گفتم عتییه منو کمک کن تا کربلا ببر گه منو کربلا آورد گفتم این قسمتی از فراد که جدا میشه میاد کربلا دور میزنه منو کنار این آب ببر القمه اونجا غسل کردم لباس رو به سبک احرام هاجیا به خودش بست اتیه میگه من جابر رو دیدم که تون این مسیر که میومدیم تن میومد ولع داشت هرث داشت زودتر بیاد به قبر حسین برسه ولی وقتی قسل کرد محرم شد مثل حالت اهرام حالا گامشو خیلی یواش یواش داره. با یه حالت تومعنینه خاصی گفتم جابر شما همون جابری که این همه شتاب داشتی گفت بله از همون قضیه ای رو که پیغمبر خدا فرمود هر کسی در فرات غسل کند و با معرفت به سوی حرکت کند هر گامی که برمیدارد دارد عجر هزار حج و عمره مقبوله دارد من عمدن گامام و کوچیک میگه می همین میگه همینجور که جابر حرکت میکرد من گفتم نزدیکی قبر امام حسین رسید او که چشم نداره من قبر رو بهش نشون بدم یه وقت دیدم جابر خودشو انداخت رو قبر امام حسین با اینکه نابینا بود فریاد زد حبیب یا حسین و این که زبار اینو میگن این اصلش مال جابره لزام منده حبیبی یا حسین حبیبی یا حسین سه بار فریاد زد از هوش رفت بعد که به هوش آمد من کمی آب به صورتش پشندم جابر رو به هوش آوردم شروع کرد با امام حسین درد دل کردن آقا جون من امو جابر شما، چون امام حسین امام حسن به جابر میگفتن امو جابر من ابو جابر شما، شما همیشه سبقت سلام داشتید چی شده که حالا سلام میکنم جواب سلام منم نمیدید بعد خودش جواب داد چگونه جواب سلام من بدید که بین بدن و سرتون رو چهل منزل فاصله؟ انداختن. همینجور نوح سرایی میکرد. حالا چگونه جابر شما قبر امام حسین رو ندیده گوه مگه میشه عاشق معشوق رو نشناسه. شنیدستم که مجنون دلفکار چه شد از مردن لیلی خبردار. گریبان چاک زد او تا به دامان به سوی تربت لیلی شتابان. در آنجا کودکی دیدی استاده به هر سو دیده ی حسرت گشاده نشان تربت لیلی از او جست. پس کودک بر و بدو گفت که ای مجنون تو گر عشق بودی ز من کی این تمنا نمودی برو در این بیابان جستجو کن زهر خاکی کفی بردار و بو کن زهر خاکی که بوی عشق برخواست یقین کن تربت لیلی همون مگه اون پیر نابینا در سحر 21 رمزان وقتی امام حسن و امام حسین از دفن امیرالمؤمنین برمیگشتند صدای ناله پیر مرد رو شنیدن وارد خرابه شدن همین قضیه رخ نداد دیدن پیرمرد ناله میکنه پدر جان بری چه ناله میکنی یه آقایی بود برام نان و خرما می آورد منو نوازش میکرد سه شب سراغ من نیومده نمیدونم چه بدی از من دیده نشانی آقا چه بود نمیدونم من که چشم ندارم او هم که اسمشو به من نگفت فقط اینقدر میدونم وقتی تو خرابه من مشغول نماز میشد این در دیوار با او به در امام حسن فرمود بود. اون بابای ما علی بود الان از دفنش برمیگردیم میگردیم. دامن امام مشتبه رو گرفت شما را به جان علی من رو به کنار قبر علی ببرید اول زائر علی ای پیر مرد آوردن میگه تا نزدیکی قبر علی رسید گفت به خدا بوی آقام میاد حالا جابر کنار قبر ابی عبدالله افتاده داره ناله میکنه یه وقتی دیدن صدای زنگ یک غافله داره میاد عطیه صدای زنگه بله یه قافله پس برو ببین اگر دشمنانن ما مخفی بشیم عطیه رفت و برگشت جابر زینب داره میان جابر امام سجاد داره میاد. جابر الویدوی افلا دارم یاد جابر پیر مرد نابی ناری نشست حتیه میگه این زن و بچه مثل برگ پایزی خودشونو از مرکب زمین انداخدد این خبور رو در آغوش گرفدد میگه یادم مبیرم از زینب نالویزد برادر عبوسید اگه نامر نبود. این از باب پیامه اگه نامهرم نبود بدنم رو بره نمی کردم. تا یک جای سالم در بدنم باقی نبود الله علیه يا مولاي يا أبا عبد الله يا من رسول الله وشهد الله اللي يسلم لمن صالم گوی و عربون لمن حرم کن و ولیون لمن و علا و دمون لمن لا کموم لان غتلتكم ولا الله حمتا غتلتكم ولا نل الله حمتا دفعتن وقامكم وزالتكم أمراتكم التي رتبكم الله وفيها یا وابد الله یا رسول الله ایوه شهیده بكربه نوم یا یا سیدالعلوم و مولانا اللہ تا مجانو و ازداشبانو و تباسانلو بکم اللہ و قدم نکم بین یدنی یا و نج من از کودکی آشنا من از کودکی عاشق نمام گرچه آلودم به انگام پیری مرانم زپیری که و تو کردم جوانی خیم با بر مرا ما از درمون به فحلون یه مشکست مادر حس جا